شاه شمشاد قدان خسرو به شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من بیش انداخت گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان تا کی از سیم و ذرت کیس توهی خواهد بود بنده من شو برخورز همه سیم تنان کمتر از ذره نی پست مشو مهر ببرز تا به خلوتگه خرشید رسی چرخ زنان بر جهان تکیم مکن ور قدهی میداری شادی زهر جبینان خورو نازد بدنان پیر پیمانکش من که روانش خوشباد گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان دامن دوست به دست و زی دشمن بکسل مرد گزدان شو فارغ گذر از احرمنان با سبا در چمن لال سهر میگفتم که شهیدان کندین همه خونین کفنان گفت حافظ من و تو محرم این راز نی از مه لعل حکایت کن و شیرین دهنان